آنجا یکی بود و یکی نبود غیر از من هیچ کس نبود خدا هم نبود نمیخواهم همچون مهر بگویم در آن سوی آفتاب است که چشمان خدا نیز آن را نمیبیند نمیبیند نه که نمیتباند دید آنجا کشوری بود که سلطانش من بودم عالمی بود که آفریدگارش من بودم چه بگویم؟ در وهم نمی آید با این کلمات چه می توانم کرد؟ همه طبقات آسمان ها را عروج کردم و هیچ نیافتم. بر همه دریاهای غیب گذشتم و از هر کدام مشتی برگرفتم. همه چشم سارهای بهشت عدن را سر کشیدم. از همه جرعه نوشیدم. چهرم را در زیر همه بارانهای بهارین ملکوت گرفتم و قطرهایی را مزه کردم. از آب قدیرهای بلورینی که در دل کوه‌ها و سینه دشتهای بیکرانه ماورا پراکنده بود چشیدم. اما زلالی هر کدام را که می‌دیدم، دیدم، هر کدام را که می به امید زلالتر و به هوای خوشگوارتر به سوی دیگری می تاختم. در نفس روح بخش صبحگاهان پرشکوه ملکوت قطرهای درشت و شاداب شبنمها را که بر نیلوفرهای بهشت از شادی و سرشاری می لرزیدند با لبهای کنچکاو و گرم می بودم و جگرم سیراب می شد و درونم نوازش می آفت. اما دلم بهانه می گرفت راضی نمی و جامم همچنان خالی می من. خسته و کوفته از تلخی و نومیدی سرشار در آن خلوت ابدی در آن سکوت مطلقی که خاطره نرم ترین زمزمهی خدشه جای پای نگاهی هم بر آن نبود، نشستم و آن جام بلورین توهی را پیش رویم بر روی زانویم گرفتم و یادم نیست، نمیدانم سرم را به دو دست نگاه داشته بودم یا دستهایم را گردا گرد زانوهایم حلقه کرده بودم اما خوب به خاطر دارم نگاه های ناکام و غمگینم را به درون توهی جام دوخته بودم و اندیشه شرمناک و دارم را پیش خاک چشم به راه تو فرستاده بودم و شکست چنان هلغومم را میسوخت و قلبم را پاره پاره می کرد که در زیر ای کشته شدن خیش را به سراحت با تمام جان و بیداری و هوشیاری تمام احساسم حس می کردم اما از آن روی که هنوز مفهوم مرگ را نمی شناختم و میگذرد گذرد را نمیدانستم از امیدی هم که در مصیبتهایی های چنین تسلیتی می تواند بود محروم بودم و این رنج مرا سخت و ابدی کرده بود نشسته بودم و در اندیشه گلتو در سرنوشت تنهایی خود در ظلمت انسوی آفتاب سایه دیوار فلق تنها بی خدا بی تو بی خیش چه میدانم چند ساعت چند شب چند ماه آنجا که زمان را نمیتوان شماره کرد خداوند هنوز زمان را نیافریده بود برخواستم تنها محزون ناامید و دل لبریز از درد بر ستیق بلند سپیده باز آمدم بر بام سیمین بامدادان دادان سهرای عبد بالا رفتم و با نگاه های خسته مات و ماتم زدم پهنه شگفت آسمان سرد و خالی را نگریستم و در حالی که قطره سرد افسوسی بر سیمای پاک سحر افکندم سطرهی که بر سیمایش جاوید بماند، چنان که گویی کسی از اعماق درونم ناله برداشته است، شنیدم که میگویم، دریغ، در سراسر این آفرینش بزرگ، در همه این بهشت آباد، در این صحراها و دریاها و چشم سارها و نهرها و بارانها، برای دل من، برای کام تشنه آرزوی من، برای آفریدن تو، چه بگویم؟ نمیدانستم چه کنم خداوند خدا منتظر است فرشتگان منتظرند روح حراسان و مضطرب است او کجا رفته است؟ چرا این همه دیر؟ بازگشتم زانوانم به نیروی بیچارگی پیش میرفتند و دلم را همچون کودکی خطاکار که برای سرزنش می برند کشان کشان نزدیک شدم، قوقای خلقت به گوشم می رسید، مجسمه های بیروه سیاه رنگ که در زیر آفتاب افکنده بودند همه جا به چشم می خورد. برخی هنوز خیس و برخی همچون سفال کوزه خشک و تود توده لجنهای تازه گلهای بدبو در صفی که تا بی نهایت کشیده بود، پیش رفتم، و خداوند خدا با چهره پر جلال و زیبایش و نگاه پدرانه و پر از رحمتش در من نگریست فرزندم چرا چشمهایت این همه سرخ است؟ چرا این همه غمگین؟ تبدار، تافته؟ چرا این همه خستهای، گریستهای؟ و در حالی که دستهای مهبانش را برای گرفتن جام از دست من پیش می آورد، و لبخندی سرشار از تأیید و رضایت بر لب داشت پرسید بالاخره فرزندم این جام را از کدامین چشمه از کدامین جویبار پر کردی تنین نافذش را همه ذرات هستیم هم میشنیدند شنیدند می نوشیدند مرتعش می شدم نمی توانم کنم با شگفتی در آن نگریستم، جام پر بود یقین کردم خداوند خدا دلش بر ناکامی من به رقت آمده است و به اعجاز خیش جام توهی مرا از کرامت خیش پر کرده است. اما خدا نیز با شگفتی در آن می نگریست بگونه ای که گویی آن را نمی شناسد. اندک اندک آن لبخند از لبهای او می رفت و چینی بر ابروانش می نشست. فرزندم این آب کدام چشم از چشم ساران بهشت من است از کدامین نهر از کدامین جوی باری که من آفریدم بر ای؟ کدامین ابر در کدامین سرزمین این آب را باریده است به آب باران مانند است اما آب باران نیست کدامین خورشید از خورشیدهای اسفند من در کدامین بهار از بهارهای اردیبهشتی من بر کدامین دریاها از دریاهای ملکوت من تابیده است و کدامین ابر این آب را برداشته است و در زیر کدام آسمان کدام فضا در چه هوا و چه سرمایی در این جام باریده است چه برقی چه رعدی درخشش چه آزرخشی تازیانه کدامین باد زجه کدامین تندر از کجا از کدام بگو فرزندم اعتراف کن این آب هیچ دریایی ای بارانی نیست از من شهر مدار چرا این چونین رنجوری چرا چشمهایت سرخ شده است رنگ خون گرفته است بگو اما من هیچ نگفتم پاسخی ندادم نمیخواستم کسی بداند فرشتگان میشنیدند سکوت کردم تا خداوند بداند که دوست ندارم بگویم. دوست ندارم بدانند. میخواهم این راز برای ابد بر همه کائنات پوشیده ماند. همه آفرینش در اینجا نامحرم است. عالم وجود در اینجا بیگانه است. آخر این را باید فقط من بدانم. مال من است. مگر نه اسراری هست که حرمتش در آن است که به هیچ فهمیدنی نیالاید. مگر نه تل را چشم نامحرم هوا می میراند، مگر نه سرمایه هر دلی حرف است که برای نگفتن دارد. هر فهمیدنی آن را از نهانگاه محرم آغوشم به در می برد. دیگری را در این محراب راه می دهد. بر این حصار بلند و استوار از آن من رخنه باز می کند. دیگری را در داشتن آن شریکم می سازد. نمیخوام، نمیگویم و نگفتم. میترسیدم خدا قبول نکند. بگویم این جام را بریس آب شیرین چشمهایی بارانی دریایی را برای گل و برگیر. آب شیرین، این آب شیرین نیست، شور است، تلخ است، گرم است. زلال زلال نیست. آب شیرین و زلال و سرد و خشکوار. در این آبی که به اشک ماه میماند به رنگ شیر صبح دم یک روز بارانی بهار است به رنگ اندوه ابهام آرزویی خفته در دور دستی مجهول این قطره‌های سرخ خوب نیست دل تو را خون میکند این فتیشها افسونت میکنند میدانی که این آب شور تلخ گرم با این قطرهای سرخ او را چگونه می سازند؟ آب شور، بسر جان، نشنیده ای که آب شور را هرچه بیشتر بنوشی تشنه میشوی؟ آب سرد و شیرین برگیر تا با جرعی سیراب شوی؟ نمیدانی که آب گرم در کبیر داغ و خشک و بی آن دنیا، با آتش سوزان زندگی سخت آن حیات با جگر تبدار و تافته که تو داری بدتر می شود بدتر می کند فرزندم حرف مرا بشنو آن را بر زمین ریز آب شیرین برگیر اما من که احساس می کردم این جام شیشه ای عمر من است آن را ناآگاه بر سینم میفشردم و هرچه این احساس که باید این جام را از دست بدهم در دلم بیشتر قوت میگرفت در داشتنش بیتاغتتر میشدم در چشمم عزیزتر میشد نگاه هم را از آن نمیتوانستم برکنم و خدا مینگریست من به محبت او به بخشایش عظیم او امیدوار بودم اما میترسیدم که این خیرخواهان و نصیحتگران حرفه‌ای پیش افتند و سر پند درسهای مشفقانهشان را باز کنند و باز آن جمله های قالبی یک نواخت تکراریشان را به نام دلسوزی و مسلحتا اندیشی که جز به درد موضوع انشا نمی‌خورد بر من املا کنند و ظاهراً به عنوان خیر و صلاح من و باتننا برای اشباع حس خودخواهی و تشفی قریزه زعامت و رهبری و خودنمایی دست به هدایت من بزنند. هیچ نصیحت کری ولو یک ملا باجی و یا ملا رجب احتمال هم نمیدهد که شاید این بیچاری نصیحت شده مظلوم که اینچنین در زیر دست و پای او آرام و ساکت مانده است این حرف های قالبی مستعمل و مندرس و زنگ زده را خودش هم بلد باشد مگر دست بردارند؟ تا این لغمه های از حزم رابع میلیون نشخار کننده را باز هم به خورده طرف ندهند، ول نمی کنند. این از خصایث این شغل مکروه است. که منتی هم میگذارند که به خاطر ما عقلشان را مصرف می کنند. اینها خیال می کنند خداوند هم فلان حاکم و خلیفه و قیصر و کسراست که هرکس کس چاپلوسی کند و از یک کنار بی آن که بیاندی شد و بسنجد و بشناسد، حرفای تکراری و کلی و بیسمر را واگو کند خوشش میآید اصلا خدا از آدمهای قالبی رام خشک مقدس یک بعدی بدش میآید اگر نه چرا فرشته های مطیع و پاکش را که همگی از آغاز خلقتشان یا در حال رکوعند یا در حال سجود به پای آدم اسیانگر خطاکار خونریز میافکند؟ علی چرا چهار هزار خر مقدس حافظ قرآن و شب زندهدار سائم و دهر قائم و لیل را در نهروان به زیر شمشیر مردانهش میگیرد؟ یک شرابخوار خار بی بند و بار اما مرد و وفادار و باشعور به همه این جمادات انسانگونه مقدس معاب بی اغل می ارزد. خدا؟ از آدمهایی که ضعف و زبونی خود را می‌خواهند با خداپرستی جبران کنند بیزار است از آنها که یک تختشان کم است و جای خالی آن را با مذهب پر می‌کنند نفرت دارد میدانم. من به بزرگواری و بخشایش خدا امیدوار بودم اما از این نصیحتگران حرفه‌ای که خود را برای خدا لوس میکنند، و خیال میکنند، از مقربان درگاه الهیاند میترسیدم. خدا میداند که این حرفه‌ای‌ها بیشتر ترسوهای تمایی هستند که از ترس گرز آتشین و مار قاشیه و ملک عذاب و یا به هوس شکم و زیر شکم و شکم های بهشت و جوی شیر و اصل و سایه توبا و دختران سیاه چشم نار پستان و پسر بچگان خوشگل و آماده این کار شده اند. از اینها باید ترسید اینهایند هند که به حرف آدم آسمان جل بی کس و کاری که در همه آسمان ها جز یک ستاره و در همه زمین ها جز یک مشت گل هیچ ندارد گوش نمیدهند کاری ندارند که چه میخواهم حرفم چیست دردم چیست نیازم چیست چه آرزویی دارم چه وضعی دارم چه حالی چه روزگاری چه سرگذشتی سرنوشتی دارم این آدمهای مقرراتی تاریخ کارمندان جزء نظم پرست اخلاقیون یک نباخت کله قندی چه بگویم اینها همان نان به نرخ روز و قوی پرست که پرومته را به زنجیر بستند از دورو برش کنار رفتند که زئوس دلخور نشود آخرش هم دیدید زئوس هرکول مرد را که آن کرکس جگرخار را به تیر زد بر همه این متملقان ترسوی زبون ریاکار ترجیح داد تا یک بار دیگر ثابت کند که خدا آدم های زلیل و تماع و ترسو و چابلوس را دوست ندارد خدا؟ دوستار آشناست عارف عاشق می نه مشتری بهشت و چونین شد. نگفتم خداوند خدا، در حالی که کمترین خط ناخوشنودی بر سیمای زیبایش خوانده نمیشد، و حتی موجی از یک تعیید هوشیارانه و عمیق بر پیشانی داشت که تنها من آن را خوب احساس کردم، رویش را به سوی صف فرشتگان موکلی که دستان در کار خلق آدمیان بودند، برگرداند و با اشارهای فرمان داد: تا به کار خود مشغول گردند دانستم چرا بر زبان نیاورد نمیخواست همه توقع کنند آنها که کاردستی ناخداگاه طبیعت و وراست و تاریخند جیاهانی که به اقتضای زمین و آب و هوا و فضل میرویند و اینان را به چنین رسالتی چکار انسان یعنی چه؟ بگو کی تا بگویم چی تنها در انسان است که مفهوم کلی آن فاقد معنی مشخصی است انسان جزئی‌هایند که باید در مسیر آیندهای دور کلیشان را بسازند مگر نه فاصله میان دو فرد انسانی گاه از فاصله میان دو نوع و حتی دو جنس دورتر است میان نرون که شهر روم را به آتش می کشد تا کیف کند و آن معین بودایی که خود را آتش میزند تا شهرش از آتش نجات یابد و میان این دو با آن جنس دیگری از آدمها که چوسفیل های ناتقند چه حد و فصل مشترکی هست که بتوان هر سرا در یک حقیقت کلی به نام انسان جای داد بگذاریم دستگاه خلقت کارش را سر گرفت و من که مستی توفیق در جانم میدوید و شادی دلم را میشست و لبریز نور میکرد به سوی روح شتافتم و او در حالی که با تمام چهرش می میخندید جام را از دستم گرفت عالم زر بود و خداوند خدا دستن در کار سرشتن فطرتها قیامت کبرایی بود حراس مرموز و سنگینی بر ابدیت سای افکنده بود و فرشتگان سر در پیش و خاموش شتابان، مشت مشت لجن برمیگرفتند و تند و بی و ناخشنود همه را یک نواخت و قالبی شکل میدادند و کناری بر روی خاک میافکندند تا خشک شود و همچون سفالی که شد خداوند خدا در آن روح دمد و مجسمه های لجنی جان گیرند و برآهفتند. راهفتند. توده های کوچک لجن در صفی که تابی نهایت ادامه داشت. به چشم می‌خورد و در آن میان گله همچون توده فروزان آتش میدرخشید. و من ایستاده بودم و با کنجکاوی در آن خیره شده بودم دلم میتبید و چشمهایم از اشک شوق و شکر چنان پر شده بود که تصویر گله تو در نگاهم میلرزید. من نتوانستم سر پا بیستم زانوانم توان نداشت کنار گله تو نشستم اما چشم از تو بر نداشتم نزدیک ترت آمدم نزدیک تر و خدا مرا از زیر چشمهای بزرگ و شوخ و حشیار و مهربانش میپایید دیدم که گل تو همچون خاکستر حلاج میتپید من بیتاب شدم شنیدم آوایی که به صدای سایش بالهای پرندگان میمانست نام مرا میبرد گویی نام خیش را از عمق درونم میشنوم تو مرا همچون هیچگاه به نام خاندی و همچون هیچگاه بر آن چیزی افزودی که جز آن لحظه دیگر بر زبان نیاوردی خدا به شتاب گلهای دیگر را میسرشت و میساخت و نوبت تو نزدیک میشد و من بیقرار نوبت تو رسید من برای نخستین بار نفسی برآوردم و نیروی شوق از جا بلندم کرد و در برابر خدایی ایستادم. اما همچنان چشم از تو بر نگرفتم. خدا با سیمایی پدرانه از نور و چشمانی پر از نبوغ و لبخندی پر از گذشت و مهربانی در من نگریست. لحظهی در من نگریست و من گرمای نگاه رحیمش را بر گونه های سرد و مرتعشم احساس کردم نگاه هم را از گلتو تو برکشیدم اما نتوانستم بر چهره خدا دوزم به پای او دوختم و سر از شرم به زیر افکندم و در آن هنگام احساس جوانی را داشتم که با معشوقش در برابر پدر بزرگ بزرگوار و مهربانش که از سعادت آنان خوشحال است ایستادم ناگهان خداوند خدا مرا نداد داد که او را به دستم ده چه فرمان شگفتی؟ من گریستم احساس کردم که نمیتوانم کار دشواری بود در زیر فشار سنگین چنین محبتی چه میکشیدم. خدا محبت محبتهایش را که از همه کوه ها سنگین تر است بر دل نازک جوان من نهاده بود خم شدم. چه تلاشی میکردم که نلخزم که بتوانم در دستم گل تو و در برابرم خداوند برداشتم سبک بودی و نرم گلی به رنگ تلا درونت را از صافی میدیدم دیدم سرخ رنگ در آن می تپید و دو دانه گوهر که با موی مرموزی به آن هست پیوسته بود برداشتم و ایستادم، تو در مشتهایم و خدا در برابرم، گرمای تن مرا داشتی، دوست داشتم، سرم را آهسته خم کنم و آن را ببوسم، اما خدا مینگریست. نگریست، خواستم ناگهان آن را در مشت دارم ببلم، نمیشد. آن را بر روی صورتم بگذارم و از غیز فشار دهم آن چنان که کاسه چشمانم از تو پر شود. اما از خدا خجالت میکشیدم. دستهایم را با ادب آهسته و لرزان پیش آوردم. تو سخت میتپیدی چنان که نزدیک بود از دستم بیفتی و من چه دلخوره داشتم چه حالی داشتم؟ و خدا می چونان چنان مرا نگاه میکرد و به نگاهش می نباخت که من اطمینان یافته بودم که تو را زیبا خواهد آفرید چنان لبخندش مهربان و پر از رحمت بود که یقین کرده بودم که تو را مهربان خواهد آفرید چنان در سکوتش نوازش و ستایش از خود میخواندم که دانسته بودم که تو را بس دانک خواهد آفرید به هر دو دستهایم گل تو را گرفته بودم و پیش می بردم تا انگشتانم ردای نورانی و بزرگ خدا را که به رنگ ملکوت بود لمس می‌کرد. دستهایم را همچنان نگاه داشتم و سرم به زیر و چشمهایم فرو افتاده به زمین و چهرم از شرم و شغ و شکر تافته لحظهی گذشت و لحظاتی و خدا هیچ نگفت. به دستهای بزرگ و توانایش دستهای مقدس و نوازشگر و خوبش خیره شدم همچنان فروهشته بود در او نمینگریستم اما همچنان حس می کردم که مرا می نگرد. حس کردم که لبهایش بیشتر به لبخند باز شده است آنچنان که سراسر درونم پر از نور و یقین شده بود ای گذشت و لحظاتی سکوت شگفتی بود فرشتگان همه دست از کار کشیده بودند و گرد ما حلقه بسته بودند داستان شگفتی بود کار آفرینش لحظه متوقف شده بود هستی از جنبش بازی استاد همه یک عالم عالم بالا گردن می کشیدند ناگهان خدا با لحنی که از محبت لبریز بود و پیدا بود که دلش بر من سوخته است گفت پسر جان پسر جان او را خودت بساز و من به قدری اشک ریختم که تو در دستهای من خیز شدی